در دره دور افتادهی زندگی می کردند. از غذای روز زن برای جمع کردن هیزم به جنگل رفت و هانس کوچولو رو نیز که تازه دو سالش تموم شده بود با خود برد. اوایل بهار بود. کودک از دیدن اون همه گلهای رنگا رنگ به وجد اومده بود و مدام از گلی به طرف گل دیگه می دوید. مادر و فرزند کم کم به وسط جنگل رسیدند. یه دفعه دو راهزن از پشت درختان بیرون پریدند و اون دو رو گرفتند و با خود به اعماق جنگل سیاه جایی که سال به سال کسی از اونجا عبور نمیکرد بردند. زن بیچاره از دل و جان به راهزنها التماس کرد که اونو بچه شو رها کنند. اما اونا هیچ توجهی به گریوزاری اون نکردند و اونو کشان کشان با خود بردند. حدود دو سه که در وسط بوتهای کوچیک و بزرگ راه رفتن به سخره عظیمی رسیدن که در میان اون دری به چشمی خورد. به محض اون که راهزنها در و زدن در به خودی خود باز شد. راهزنها به همراه اسیران خود از دالان تاریک و درازی عبور کردند تا سرانجام به غار بزرگی رسیدند. از دیوارهای غار، شمشیرهای بزرگ و کوچیک و سلاحهای دیگه ای آویزون بودند و در زیر نور آتش برق میزدند. در وسط غار میز سیاهی قرار داشت که پنج راهزن دور اون نشسته بودند. کسی که انتهای میز نشسته بود، سردستی راهزنا بود. فرمانده با دیدن زن به طرفش رفت و گفت که اگه آروم باشه و مقاومت نکنه، به اون صدمه ای نخواهد رسید. در از اون باید براشون غذا بپزه و غار رو تمیز و مرتب کنه بعد هم به اون زد کرد که اگه رو درست انجام بده با اون خوش رفتاری میشه پس از این سخنان مقداری غذا جلوش گذاشتن و تختی رو که بنا بود همراه کودکش در اون بخوابه نشونش دادن. زن بیچاره سالهای زیادی در اونجا موند در این مدت هانس بزرگ و نیرومند شد مادرش همیشه برای اون قصه های مختلفی تریف می کرد و به کمک یه کتاب قدیمی که اون رو توی گوشه ازغار پیدا کرده بود به اون خوندن و نوشتن آموخت. وقتی هانس نه ساله شد از یه شاخه کلوفت صرف برای خودش چوب دستی درست کرد و اون رو پشت تختش پنهون کرد. بعد پیش مادرش رفت و گفت مادر عزیزم به من بگو پدرم کیه؟ مادر سکوت کرد و حرفی نزد. تون که مبادا دلش برای خونه تنگ بشه. اون به خوبی میدونست که راهزنا دیگه به هانس اجازه نخواهند داد که از چنگشون فرار کنه. بعد هم از فکر این که هانس بیچاره هرگز پدرشو نخواهد دید، عشق از چشمش سرازیر شد. همون شب وقتی راهزنا پس از یه روز دزدی و چپاول به قار برگشتند، هانس چوب دستیش رو برداشت. روبروی فرمانده ایستاد و گفت: من باید بدونم پدرم چه کسیه. و تو به من نگویی با این چوب دستی حال تو جا میارم. فرمانده فقط خندهی کرد و سیلی محکمی به گوش هانس زد. طوری که پسرک به زیر میز خلتید. هانس فوری از جاش بلند شد. اما جلوی زبونش گرفت و چیزی نگفت. فقط فکر کرد من یک سال دیگرم سب می کنم و بعد دوباره امتحان می کنم. شاید این بار نتیجه بهتری به دست بیارم. پس از یه سال دوباره چوب دستیش رو از زیر تخت برداشت. نک اونو تیز کرد و پیش خود فکر کرد که سلاح مناسبی فراهم کرده. هنگام شب وقتی راهزنان به غار برگشتند پس از یه شکمچرانی مفصل رفتند و خوابیدند، هانس چوب دستیش رو برداشت. جلوی فرمانده ایستاده گفت بگو پدر من کیه؟ فرمانده به جای پاسخ سیلی محکمی به گوش هانس زد و به سرک دوباره به زیر میز خلطید اما فوری از جاش بلند شد و با چوب دستی به جان فرمانده راهزنان و افرادش افتاد اونقدر بر سر روی اونا کوبید که دیگه نای نفس کشیدنم براشون نموند در همین حال مادرش گوشی کس کرده بود و به این صحنه نگاه میکرد اون از این همه قدرت و شجاعت هانس دهانش باز مونده بود هانس به محض اینکه از کتک زدن راهزنان فارغ شد به نزد مادرش اومد و گفت مادر جان، حالا می‌بینی که من در مورد خواستم کاملا جدی و مسمم هستم؟ پس به من بگو پدرم کیه؟ مادر جواب داد هانس عزیزم، بیا با هم بریم و اونقدر جستجو کنیم تا اونو پیدا کنیم. بعد از این حرف کلید رو از کمر فرمانده راهزنان باز کرد. هانس نیز یک کیسه بزرگ برداشت. اونو پر از طلا و جواهر و زیورالات قیمتی کرد. بعد سر اون رو گره زد. روی دوشش انداخت و با مادر از غار بیرون رفت. تصور کنید وقتی هانس از میان ظلمت قدم به روشنایی روز گذاشت و چشمش به درختان سرسبز و گلها و پرندگان و آفتاب صبحگاهی که در آسمون نیلگون می درخشید افتاد. چقدر شگفت زده شد. او با حالتی کاملا زده توی جایش ایستاد و به اطرافش خیره شد تا اینکه مادر راه برگشت به خونه رو پیدا کرد و هر دو با هم به راه افتادند پس از دو ساعت پیاده روی در جنگل اونا شاد و خوشحال به دره دور افتاده رسیدند و چشمشون به خونه کوچیکی افتاد که هنوز پا بود پدر که جلوی در خونه نشسته بود وقتی زنش رو دید و شناخت از خوشحالی به گریه افتاد و وقتی که فهمید هانس پسر خودشه، همون پسر کوچولویی که اون فکر میکرد مدت هاست مرده از شادی پر رو برد. هانس گرچه فقط دوازده سالش بود، یه سر و گردن از پدرش بلندتر بود. اونا همگی به داخل خونه رفتند و هانس کیسه خودش رو به گوشی بخاری تکیه داد. به محض اینکه کیسه رو زمین گذاشت، خونه با سر و صدای بلندی شروع به لرزیدن کرد. دیوار بخاری ترک برداشت. آتشدان به یک بار فرو ریخت و کیسه سنگین جواهرات از همانجا به داخل سرداب افتاد. پدر با وحشت پریاد زد: خدا به دادمان برسد. این چه بلایی بود؟ پسرجان تو که ما رو خونه خراب کردی. هانس گفت: پدرجان، خواهش میکنم قصه هیچ چیز رو نخور. در داخل اون کیسه اونقدر پول هست که میتونی با اون بیش از 100 تا خونه بسازی. بعد طول نکشید که پدر و پسر شروع به ساختن خونه جدیدی کردند. زمین و دامهای بسیاری خریدند و حسابی کارشون رو نقد گرفت. هانس مزاره رو شخ میزد. وقتی اون پشت خیش راه میرفت و اون رو به میان خاک فشار میداد گاو میشا دیگه هیچ نیازی بکشیدن اون نداشتن. بهار سال بعد هانس به نزد پدرش رفت و گفت: پدرجان مقداری پول به من بده و. بگذار تا یه چوب دستی درست حسابی برای خودم درست کنم. چون میخوام به سرزمین های عجیب و دوردست برم و دنیا رو بگردم. موقعی که چوب دستی آماده شد، هانس خونی پدرش رو ترک کرد و اونقدر رفت و رفت تا به جنگل بزرگ و انبوهی رسید. یه دفعه صدای چیزی رو شنید که ترق و طرق بلندی به راه انداخته بود. وقتی به اطرافش نگاه کرد، چشمش به درخت سنوبری افتاد. که پایین تا بالا مانند یه تناب به دور خودش پیچیده بود. هانس سرش رو بلند کرد و اون بالا بالاها نگاهش به غولی افتاد که محکم درخت رو گرفته بود و داشت اون رو مانند ساغه علف می پیچوند. هانس داد کشید آهای! رفیق! اون بالا چکار کار داری میکنی؟ غول جواب داد میخوام از این درخت های سنوبر یه تناب محکم برای خودم درست کنم. هانس فکر کرد او واقعا موجود نیرومندیه و ممکنه به درد من بخوره. بعد داد زد. اونا را رها کن و همراه من بیا. غول از درخت پایین اومد و همراه هانس به راه افتاد. اون اونیه سر و گردن از هانس بلندتر بود. هانس به اون گفت. من از حالا به بعد تو رو درخت پیچ صدا میزنم. همینطور که می یه دفعه صدای پودکایی رو شنیدند که به قدری سنگین بود. که با هر ضربه اون زمین زیر پاشون میلرزید کمی دیگه که جلو رفتن به صخره عظیمی رسیدن رسیدند که یه قول در مقابل اونا ایستاده بود و با مشتش تکه های بزرگی از اون رو خورد میکرد هانس از اون پرسید که چه کار داری میکنی اون جواب داد شبها ها که میخوام بخوابم حیوانات درنده مدام دور من میچرخند و سر و صدا میکنند و نمیذارن بخوابم حالا دارم برای خودم خونه ای درست میکنم تا بتونم راحت استراحت کنم. هانس فکر کرد آه چه عالی این شخصم به دردم میخوره. به گول گفت این کار رو رها کن و همراه من بیا من تو رو سنگ شکن صدا میزنم. غول قبول کرد و ستایی در جنگل به راه افتادن. به هر کجا که میرسیدن حیوانات وحشی حراسان از برابر اونا فرار میکردن. هنگام شب به قلعه قدیمی و متروک رسیدن داخل شدن و در سرسرا خوابیدن زوب هانس به باغ قلعه رفت و دید که سرتاسر سر اون به صورت یه بیشی وحشی در اومده و پر از بوته های خار و علف های همینطور که در میون بوته قدم می‌زد زد یه گراز وحشی تنومند از لابلای بوته بیرون برید و به طرفش حجوم اوورد اما هانس با چوب دستیش چنان به سرش کوبید که حیوان در مقابل پاش بیجان جان نقش زمین شد. هانس اون رو روی شونش انداخت و به داخل قلعه برد. بعد اون رو درسته به سیخ کشید و روی آتیش گذاشت. بعد از اون که هر سه شکمی از ازاده در بردن با هم قرار گذاشتن که هر روز دو نفر به شکار بروند و سومی توی خونه بمونه و غذا بپزه. اولین روز درخت پیش توی خونه موند و هانس و سنگ شکن. برای کار از قلعه خارج شدند. در حالی که درخت پیش مشغول آماده کردن غذا بود، پیرمردی چروکیده و فرسوده به کنار دروازه قلعه اومد و مقداری غذا خواست. درخت پیش جواب داد، بزن به چاک، مفت خور بیخاصیت، هیچ کس به تو گوشت مفت نمیده. اما هنوز این کلمات از دهانش خارج نشده بودند که با تعجب دید اون پیرمرد ریز نقش و ضعیف بر سرش پرید و چنان اون رو زیر ضربات مشت و لگت گرفت که اون اصلا نمیتونست از خودش دفاع کنه سرانجام بی حال نقش زمین شد اما پیرمرد کوتوله هنوز ولکن معامله نبود و تا یک هتک مفصل دیگه به درخ پیج نزد اونو رها نکرد اما وقتی دو نفر دیگه از شکار برگشتند درخت پیج هیچ چیزی از پیرمرد کوتوله و زور و بازوش به اونا نگفت چون فکر میکرد وقتی که اونا نیز به نوبه در خونه بمونن پیرمرد به حسابشون خواهد رسید و اینطوری دلش خانک میشه. روز بعد سنگشکن در خونه موند و همون اتفاقی براش افتاد که برای درخت پیچ افتاده بود. پیرمرد کتوله اونو هم کتک زد چون حاضر نشده بود به اون تکهی گوشت بده. وقتی که دیگران به خونه برگشتند درخت پیچ فوراً متوجه شد چه اتفاقی افتاده. اما هر دو جلوی زبونشونو گرفتن. با این که هانس نیز باید مرزی مشتهای کوتوله رو بچشه. روز بعد هانس در خونه موند. هانس مشغول پختن غذا بود که پیرمرد کوتوله وارد شد و بدون هیچ گونه سلام و اظهار ادب مقداری گوشت خواست. هانس فکر کرد این پیرمرد بیچاره و فقیره. من از سهم خودم به اون میدم تا سهم دیگران کم نیاید. و تکه گوشت به اون داد. کتوله فوری او رو خورد و باز هم گوشت خواست هانس قلب باز هم تکه ای به اون داد و گفت که این بار تکه بزرگتری به اون داده تا کاملا سیر و راضی بشه اما کتوله برای بار سوم کباب خواست هانس گفت تو باید از این رفتار خودت خجالت بکشی و دیگه چیزی به اون نداد کتولی بد بداخلاق خواست روی سرش بپره و همون بلایی رو سرش بیاره که بر سر درخت پیچ و سنگ شکن آورده بود اما این بار دیگه حریفش بد کسی بود چون هانس چند ضربه جانانه حواله اون کرد و کتول نالان از پله های قلب پایین دوید و از اونجا فرار کرد هانس خواست اونو تعقیب کنه اما چون خیلی بلند قد بود کوتوله زیر دست و پاش افتاد و هر دو زمین خوردند. وقتی بلند شد کتول مسافتی رو از اون جلو افتاده بود هانس به دنبال او به میان جنگل دوید. کتوله به میان سوراخی در دل ها پرید. هانس پس از علامت گذاشتن محل مورد نظر به قلعه برگشت. وقتی که دوستاش از شکار برگشتند، از دیدن هانس که بسیار شاد و سرحال بود تعجب کردند. هانس اتفاقی رو که براش افتاده بود تعریف کرد. اونا هم گفتند که چه اتفاقی براشون افتاده. هانس با شنیدن حرفای اونا خندید و گفت تان بود شماها نباید در مورد گوشت کباب تا این حد خستت به قرض میدادید واقعا مایه خجالت هست که دو نفر آدم قوی هیکل و زورمند این طور از دسته کتول کتک بخورند پس از شام اونا یه سبد بزرگ و مقداری تناب برداشتند و با هم به سراغ آن سوراخ سنگی رفتن که کتول به داخلش رفته بود هانس در سبد نشست و چوب دستش را در دست گرفت و دوست داشت رو با تناب پایین فرستادن. به محض اینکه هانس به حفره رسید در بزرگی دید. وقتی اون رو باز کرد با دختر جوونی رو برو شد که تا حالا هرگز کسی رو به زیبایی اون ندیده بود. کتوله در گوشه نشسته بود و با حالتی موزیانه به هانس ریش خند میزد. دختر جوان را از سرتاپ به زنجیر کشیده بودند و چهرش به قدری محضون غمگین بود که قلب هانس به درد اومد و با خود گفت، باید این دختر بیچاره را از بند تلسم این کوتوله بچنز آزاد کنم و با چوب دستیش چنان زرعی بر فرق کتوله نواخت که در جا کشته شد بلافاصله زنجیرها پاره شدند و دوباره گل لبخند و لبان اون شکافت دخترک برای هانس تعریف کرد که یه شاهزاده خانمه بود یک کنت شورشی او رو از خونی پدرش رو بوده توی این غار مخفی کرده چون اون حاضر نشده بود با کنت ازدواج کنه کونت آن کوتوله رو به عنوان نگهبان در اونجا گذاشته تا هر روز او را رو آزار و شکنجه بده هانس پس از شنیدن این حرفها شاهزاده خانم رو در سبد گذاشت و با فریاد از دوستانش خواست سبد رو بالا بکشند اما وقتی سبد رو برای اون پایین انداختن هانس احساس کرد که نمیتونه به دوستاش اعتماد کنه چون اونا با پنهون کردن ماجرای کوتوله چهره واقعی خودشون رو نشون داده بودند و هیچ کس نمی‌دونست دونست زنه که اونه حالا چه فکری توی سر داشتند. پس اون با دور چوب دستی سنگینش رو درون سبد گذاشت و با فریاد گفت که اونو بالا بکشند. اما همین که سبت تا نیمه راه بالا رفت اون دو نفر تناب رو رها کردند و گذاشتند تا سبد به تای حفر کنه و به این ترتیب هانس از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. با این همه اون نمیدونست چطوری خودش رو از اونجا نجات بده. پس به فکر فرو رفت. اما هرچه فکر کرد نتونست راه حلی پیدا کنه. همینطور که داشت در طول غار بالا و پایین میرفت به اتاقی رسید که زندان شاهزاد خانم بود و دید که کوتوله انگشتری به دست داره که با نور عجیبی میدرخشه. هانس اون رو از دست کوتوله در و به انگشت خودش کرد. یه دفعه؟ صدای خشخشی از بالای سرش شنید وقتی به بالا نگاه کرد چشمش به دو پری کوچک افتاد که بر فراز سرش توی هوا شناور بودند پریها گفتند که از حالا به بعد اون ارباب اوناست و اوناستو بعد پرسیدند چه آرزویی داره هانس اول کاملا شگفت زده شده بود اما سرانجام گفت که دلش میخواد دوباره به روی زمین برگرده اونا توی چشم به هم زدن اونو به روی زمین بازگردوندند. هانس به داخل قلعه رفت. کسی رو اونجا ندید. درخت بیچ و سنگ شکن فرار کرده و شاهزاده زیبا رو با خود برده بودند. هانس با دیدن این وضع انگشتری رو فشار داد. پریها ظاهر شدند و به او گفتند که دو رفیق نابکارش به دریا رفتند. هانس با شنیدن این موضوع خود را با حداکثر سرعت به ساحل دریا رسوند. در آن روز دست‌ها چشمش به کشتی افتاد که از ساحل دور میشد. اون از شدت عصبانیت با چوب دستیش به داخل آب پرید و شنا کرد. اما وزن سنگین چوب دستی مانع از اون شد که بتونه سرش و بالاتر از سطح آب نگه داره. درست در لحظه‌ای که دیگه چیزی به غرق شدنش نموده بود، به یاد انگشتری سهرآمیزش افتاد. بلا فاصله پریان ظاهر شدند و اون به سرعت سائقه به روی عرشی کشتی رسوندند. هانس به کشتی رسید. چوب دستیش رو توی هوا چرخوند و حق دوغول خائن رو کف دستشون گذاشت. بعد هم اونارو رو به میون دریا انداخت. بعد کشتی رو به سمت سرزمین پدر شاهزاد خانم هدایت کرد. وقتی به اونجا رسید، مردم اون سرزمین رو از شر های بدجنسی که تمام کشور رو مرکز تاخت و تاز خود قرار داده بودند، نجات داد و بعد با شاهزاده خانم ازدواج کرد. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صی نشانی کانال تلگرامی T نقط می/ مهران دوستی،تی نقط ME/MEH، r a n d o u s t i نشانی وی ما m e h r a, -A, -A نقطه B-L-O-G-F-A نقطه C-O-M